ای علی آبادی ای بچه محل سمیمی استاد من آقای من چرا باز غیبت زد کی بودی سالسلی پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود کی او غیبت زد نه از نمیدونم واسه چی وقتی هم باز اومدی خانواده‌ت نبودن باز نمیدونم واسه چی واسه کی داره که کی می‌خواد چطوری ببینه مثلا من آتو با این عقل مهاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی همه ی دنیا رو گشتی گشت پیشون نرسیدی بهشون وقتی پیداد شده برگشتی خونه مونست تنهایی بود و انتظار آخ که چه زجری تکشیدی کشیدی اینجا تو همون تنهایی بود که براهت رسیدی به سه به بودات و علی و حلاجت به حافظه داد چاه زدی حرف از کار زدی کار بر کار نه برای قایت و نهایت مثل همین گل زدن ها آتیش روشند کردن آتیش آتیش چه خوبه حالا تنگ غروب چیزی به شب نمونده به تب نمونده به جستن و جستن و نو نقره جستن اینجوری بود که جستی تو اوز نقره تو به خودتو خدای خودو بزید جذب امنیت خوبی است می توانی با او خود خودت باشی می توانی دردهایت را هر چند ناچیز هرچند گران بی خجالت با او در میان بگذاری از حماقت بگویی دوست انتخاب آزاد توست اختیار توست نامش را در شناسنامت نمی نویسند نامت را در شناسنامه نمی نویسند دوست عرف نیست عادت نیست معذوریت نیست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 دوستایی که همه جا هستن، دوستایی که شاید اونو نشناسن ولی اون اونا رو خوب میشناسه. آدما، گربه ها، گلا، درخت سگا، دشت ها، میزا، صندلی ها، کتابا، ها, برف ها، پنجره ها و تموم مهربونی های اصلا هم کاری با اونایی که از بچگی هی همو هو میکنن و مسخره میکنن نداره. اصلا همه که نباید شکل هم باشن. دوستی هم یعنی قبول تمام تفاوت‌ها. اینجا رادیو دیو بنفشه و شما در حال گوش شدن به اپیزود پنجم از فصل دومون است اپیزودی برای رفاقتهای بنافشه ارقبان بلومو به دوالا دوست از دوست به یادگاه دردی دارم از دوست به یادگاه دردی دارم در بد صد زمرد بسیار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتاد بسیار فتاده بود ان در غمش بسیار فتاده بود ان در اما نچه نیزار اما نچه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 رفاقت ها بوی سب میدن و صدای گنجشگک های درخت چنار بوی نونسنگک میدن و عطر آقاجان رفاقت بوی رفاقت میدن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 دو تا دکون اینا در اصل یه دکون بزرگ بوده که بعد ها با یه تیره نازک آجوری نصفش کردن ی سازن های فرم با وارگان یک واقعیت نداره، اونی که میخندد دلش آزمه برتره، میخندد تا دنیا با وارگان خوبه، با وارگان رفیق خوشبخشی با وارگان سر باشی کسند عال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 حتی یه ذره روغن و گریس و کسیفی توی دکونش نیست. ولی برعکس ابرام آقا چال وسط دوکونش از بس از روغن سیاه شده تاش معلوم نیست. همه میگن چون این دوتا این همه با هم فرق دارن با هم قهرن. مثلا یکی میگفت واسه خاطر کسیفی بیش حد حد آقا و تمیزی و وسفاس بیش از حد محموده که اینقدر با هم بد شدن. ولی از گفت سر رفاقت بوده. راست هم میگ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 قانداش خرج خرج بجوی. می <متصفح> دیون دیون تا دل دریاست جای یه دیونه ها اوج است دیفون میخنده چشماش می بنده تا اینکه یه روز این دنیا یه یه دنده بخنده دنیا یه دندگی و یادم یه بار زندگی می کنه بخند و روش کن دنیا را بارو جلو نه یه نه یه نه یه این کانون دنیا است نون کانون از دل از حس حاتونیه دلخوره نمیده رفاقتهای علکی مثل اوتکولانای بنجل فیک هم. از اینهایی که طرح شیشه و حتی بوی اولشون شبیه اورجینالشون هم. و بعد چند دقیقه بوی خوبشون میپره و یه بوی مشمعز کننده سردردابر میمونه و بس اینجور رفاقتها مثل اسید میمونه میریزه توی رگ و پی و پوست روح آدمی زد همه چیزو از بین میبره اعتماد و سرطانی میکنه و دلو کفک زده اینطور رفاقت ها رو هم نمیشه تعریف کرد اگه بخوایم تعریفشون کنیم کل دنیا رو آفت بدبوشون پر میکنه و نمیدونم چی میشه برای همینه که باید هی با ایما و اشاره و مثال و مستاق گفتهشون شد اینطور رفاقت مثل لید و کاین میمونن اول میسوزونن بعد بیهست میکنن دل و روح و، روان و حتی جسم آخرای کتاب برادارن کارمازوف یه جملهی داره که میگه جهنم چیست.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 امروز فهمیدم چرا آدم به جنگ میرن با اینکه که میدونن چقدر خطرناکه. امروز فهمیدم چرا آدما به جنگ میرن. آدما به خاطر رفاقت به جنگ میرن. رفیقهایی که تو جنگ براشون مهم نیست یکیشون کفش با پوست می میپوشه و یکی دیگرشون دمپایی پاره وصله دار.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 پایان ماجراست جراست شلیک کن رفیق تا قاو نا کجاست شلیک کن رفیق دستور می آتش عزیز من آلی جناب خواه شلیک کن رفیق اجرای حکم مرگ اسمش که قتل نیست این جمله آشناست شلیک کن رفیق به به که او فرمان آتش در معرفت شلیک کن رفیق مرگ موقعتی در مد نشست کرد اندیشه در کماس شلیک کن رفیق متن وسیعتم شرح مصیبتم بی روز کربلا شلیک کن رفیق یک روز سر ما ما که جا به مور ناونه گفتم من قلب کیجاب جان شلیک کن رفیق ای قلبم نهی فدا رفاقت ها دوستی مثل انار انار کللا خوبه ولی همه دونا ها که یاغطی و قرمز و شهلا و جنگیل بالا نیستن بعضی هم کوچیک و سفید و ترش موندن مثل لحظاتی تو رفاقت ها که باید به کلیت شیرین و آبدار و قرمز نگاه کنی و اون یه دونه رو قرد بدی و فراموشش کنی و حتی نجاییش مثل یه آجر از یه دیوار بزرگ آدم که به خاطر یه آجر نمیزنه کل دیوار رو با خاکی اکسان کنه رفاقت را رو هم باید دونست.